درکت که خسرو بسوی... برای سرزمین ایران به سرزمین ایران به سوی ایران به شب بشد شهر یک سر پر از گفت و که خسرو به ایران نادست روی سواران گذین کرد پیران هزار همه جنگ و همه نامدار به دیشان چنین گفت پیران که زود انان تکابر به باید بسرد یعنی لگام و رو در دست بگیده و... به بتاخت برید چون بود لگام رو تکی دادن لگام از سرعت می‌بسر. چه و روسرا به ایران شوند، زنان اندر ایران چه شهران شوند. نامون بدین ببین خاک و آب از این داغ دل کرده یعنی از این کار. به گفتار او سربرف راختند شب و روز یک سر همی تاختند. چنین تا آمدی یکی جهر رود. سفح شد پراکنده بیتار رو بود. آن جایگه بینگرید. درفش در سفهدار توران بدید یعنی پیران رو. دوان شد برای گیو آگاه کرد و آن خواب کوتاه کرد. و تو گفت گیوه مهبان مه بانوان چرا در کردی بدینسان روان؟ جهاندار پیروز یار من است. سر اختران در کنار من است. بدو گفت که خسروی رزم ساز کنون بر تو بر کار من شد دراز به مرا رفت باید کنم فشاندن ز شمشیر بس شید خون یعنی این دشمنان که میگوشم از زربه شمشیر خون به طرف نور پرتاب پرتابش در فضا بدو گفت گیوی شه سرفراز جهان رو به نام تو آمد نیاز اگر تو شبید دور در دور از ایر امروز زن از جناب دور از در یعنی دور از اینجا دور از تو این. دور از جناب دیگه یعنی در حد مردم هست، اگر تو شبی دور از ایر تبا نبینم کسی از دره تاجکو از در یعنی شایسته شود رنج من هفت ساله به باد دیگر آنکه ننگ آورم بر نژاد یعنی من که پهلوان هستم من نجات خودم ننگ میارم که چرا گذاشتم که من جنگ نکردم تا اینکه این کسی که پادشاه ایران خواست شد اون بیاد جنگ بکنه تو بالا کو زین و سفهر را ببین مرا یار باشد جهان آفرین بله های زیادی از شما اومده که من حالا سعی میکنم با توجه به موضوع برنامه به حالا سوالاتی که شما کردید از استاد بپرسم در پایانم سعی میکنم حصه به خیلی کوتاه و سری های شما رو بخونم سوال کردن استاد اه, که اه, سلام رسونن خدمتتون در لرستان به برادر بزرگتر میگوین گیه با کسرگی. گ خواهشمندم ریشه و معنی این واژه رو بفرمایید این آقای یار احمدی پرسیدن آقای یار احمدی عزیز درود به لرستان این واژه عکا که در تاجیکستان گفته میشه در خوراستان بهش میگن گگه برادر بزرگ میگن گگه یعنی تغییر گفته اونه و همین ساده در شده در, در, در درستان هنوز ببخشید در شیراز هم کاکا کا میگن بودن که اکا. اکا در شیراز کاکا کا در خوراستان گگه و در لرستان گه سلام بسوندن خدمت شما هنوز هم در منطقه نیریه است اسب کربورت دارد. اسپس یا اسپس من نمیدونستم. اسپس توصیه. اسپس. کربورت. اگه اسپس هم باشه یه خود تأیید داده کرد ولی اسپس توصیه شدی. این شغل هم... منطقیه. در نایری است. نایری. یاست یاست. شاید نیر باشه. ها؟ نمیدونم آها شاید نیز بله چون نایری. لگ نایری نیره... یعنی رومی. بله بله. عربیه. بله. نیزی. خیلی خوششوند که من اینی شریدم. بله. و پیو مکهای دیگری که از شما برای شما رسیده. باز در مورد حالا مسئله سریال ها گفتن که حالا خیلی به اون نمی پردازیم و موسیقی میشنن میتوان پیامک ها رو درست بتونم ببینم ختمتون عرض بکن عزیز از سوالات از استاد میشه می من خدمت استاد هست کردم چون شنندهی تازه ممکنه ما داشته باشیم تازه برنامه ما رو شنیده باشی یادش رفته باشه مثل من شاگردی واسه یه موقع یادش میرید یه فراموشی ام البته نمره اونا رو خوب بدید ما سوالات رو مطرح میکنیم که شما در برنامه های گذشته حتی خیلی نزدیک حتی در خود خود اون برنامه هم شما اون رو مطرح کردید و پاسخ گفتید اصلا در دل برنامه بوده ما می پرسیم از شما می پرسیم مستد که شما باز با اون سه صدیتون پاسخ می فرموید. و ما ممنون میشیم. در مورد من یادم این سوال چندین بار من گفتم با سالان در مورد این شعری که یعنی اجام زنده کردم بدین پارسی این است یا افسوده نیست؟ بله همطور که فرمده این است و به دو دلیل یکی اینکه سالسی سال سی نادرسته در تمام زبانهای آریایی اول برای شمارش اول میاد بعد عد مثلا سی اسب یا 50 مرد و اصلا در زبان فارسی چنین چیزی نیست که اول معدود بیاد بعد عدد بیاد یعنی شما این مثالی که وارد پیشم گفتم شما اگه بچه چهار ساله بگید گردو پنج به شما میخنده بعد بگید پنج گردو تا بفهمه این بیت عبرش دوم این که فردوسی همواره از ایرانیان با نام آزادگان یاد کرده و ممکن نیست که باید عجم رو به کار ببره برای ایرانیان. عجم به زبان عربی یعنی کودن و گنگ و بیخرت. اونا ما رو کودن و گنگ و بیخرت در شما رو آیا فردوسی روان آگاه ایران برای ایرانیان همیتون میگه. خب الان یونانیان به ما گفتن بربر. و عرب ها به ما گفتن عجم. ترکمان ها باید مگن قل. قل یعنی نوکر. آیا ما خود من باید به خود میبگیم قل این به دو دلیل از آن و فردوسی میست یکی اینکه در مصره نخوص یعنی لطن نخوص عدد و جاشو عوض کرده دوم اینکه ممکن نیست در سرتا سر شاهنامه هر جا که یاد میشه از ایرانیان ایران یعنی آن و آزادکان ایرانیان آزادگی در فروتنی میدونستن چون فروتن هنوز هم خوشبختان آثار فروتنی در نزد ایرانیان هست البته نه به شدت زمان باستان ولی خوب خواهی نخواهی بازم هنوز هست ما مردم این سرزنین هستیم وجود داره بره. بره اینطوره است که آزادگی رو در پروتنی می مسلما این سخن هست فرکوسی نیست سوال کردن در مورد این که آیا پیشدادیان جلوتر بودند یا کیانیان ظاهرن آتش آهن کشاورزی و غیره در عهد حوشنگ کشف شده آیا درست است؟ آقای سروری این سوال کردن از مشهد مقدس درود بر شما آقای سروری و درود به سرزمین در حقه فروسی توسی پیشدادیان البته پیشتر بودند نامشون معلومه داد یعنی قانون پیشدادیان یعنی کسانی که قوانین نقصین رو گذاشن و با حوشنگ آغاز شد بسیاری از شگفتی های تاریخ جهان هنوز ایران یعنی اروپاییان و تورانیان از ایران جدا نشده بودن با هم میزیدن بسیاری از شلیفتی های تاریخ دورکرانه ایران در عهد پیشدادیان اتفاق و منطقه همه باراز و رمز و خیلی کوتاه اشارات کوتاه. پس از اون کیانیان وقت ما می‌بینیم که فریدون و در حقیقت منوچه رو که فریدون که سبهره شدنه نجات آریاس و منوچر که باشندگان، این کوهستان های البورز میانین هستن که بماوند و آمل در میان اینا بوده و پایتخت منوچرک مانوش چیتره یعنی نژاد مانوش در آمول بوده در همین باشندگان کوه البورز مرکزی بودن و کم کم با حضور یعنی که قبات یعنی اینکه ایرانیان یک شاه شاهان محلی یک شاه برای خودشون چون میپذیرند، این کیخو کوی کماسا بسیار هم نیکنام بوده و قوانین بسیار زی، زیبایی گذاشته با کوی کماسا یعنی تو دو دوره کیانیان ایران آغاز میکنه جان. خب فرمودین که گیر به کیخسرو گفت شما من پهلوان هستم. من میرم شما برای سرزمینمون برد. ایران بمانید تو بالا گزینو سفح را ببین مرا یار باشد جهان آفره از این سو شه بود از آن سو سپاه. میانجی شده رود و بربسته راه چون رعد بحاران گیف به قرر ز سالار لشکر همی جست نیف این در جنگ باستانی بود بوده که یک پهلوان میرفته و یک هماورد میخواسته جنگ اینطور آغاز میشد پس از اینکه این دو هماورد و پهلوان با هم میجنگیدن اون وقت جنگ آغاز میشد اول, می اول رفتن. دو تا پلمان بعد چ بشنید پینج دشنام داد بدو گفت گفت بدرگه بد زاد. چون تنها بدین وا آمدی دلاور به پیش سپاه آمدی کنون خورردنت نخ ژوپین بابد برت را کفن چنگ شاهین بود. یکی داستان زد وجب دمان حجبنی یعنی شیر نر که چون برگوض نیست سر باید زمان زمانه برو دم همی بشمرد بیاید دمان پیش من بگذردن شیر گفت وقتی که زمان یعنی عمر گوزنی به برسه خود او زمانه او رو میفرسته پیش من تا من او رو ببینم اینجای این موضوع خیلی مهمه برای که گیو یک نفر و یک سپاه هزار نفری گیو مخصوصا رفت هماورد خواست برای که اول تکلیف کار با هماورد روشن بشه و بعد اون وقت اگر هم ورد کشه شد اونا فرنگیستو که رو میگرفتن یعنی این یک شاهکاری که گیو زد زمان آوری تو کنون پیش من همون پیش این نامدار انجامن بدون گفت گیوه سفهدار شیر گر و آبندر دلر دلیر که از این پرهنر یک, یک سوار چه آیت تراب بر سره نامدار برانگیخت اسب و بیافشادران به گردن برآورد گرز گران یعنی پیران چو کشتی ز دشتن در آمد برود همی داد نیکیدهش را درود خداوند را نکرد ایچ گیف آزمون را شتاببر آزمایش هیچ شتاب از خودش به خرج نداد بدان تا برآمد سفهبد عذاب ز به پستی بپیچید گیو گریزان همی شد ز سالار نیو یعنی از پیران گریخت چون از آب و از لشکرش دور کرد به زین اندر کند گرز نبرد بارها گفتم ه گرز و گرز و کمند سوی زین است با فتراک به زین میبستند گریزان از آن پهلوان بلند ز فتراق بگشاد پیچان کمند گرز رو طرف راست زین میبستند کمند رو طرف چپ میبستند همینطور که در حال گریز بود، کمند رو از طرف شب باز کرد، یعنی ذهن کمند رو باز کرد و کمند رو به کرد. بپیچید، گیوه صرف راز یال، کمندن برفکند و کردش دوال، سر پهلوان اندر آمد به بند، زین برگرفتش به خمه کمند. بله. به خاری پیاده ببردش کشان، دمان و پر از در چون بیهوشان. ابر شاه پیران بخوان دافرین خروشان ببوسید روی زمین چنین گفت که شاه دانش پجو چو خورشید تابان میان و گروه تا دانسته درد و تیمار من یعنی برای شما چه کار کردم بیاتون میاد که افراستی ها بخواست بکشه نک ساشت بعد که خسروب اینو گرفت و برد و با در کوه کوهستان قلون یا قلو یا قلو که شناخته شده نیست بعد خسرون که بزرگتر شد رفت اون از اونجا آورد و تحت پناه خودش گرفت و با یک روز با بردش به پیشگاه افراسی ها گفت خودتو به بیگوشی و دیوانگی بزن که خسرون پاسخهای نادرخور داد و افراسی ها گفت این از, از تخت به یاد نمیاره ابنه نگران شد همینطور ناغاه بزرگ بشه و این کارها رو همه رو پیران کرد یعنی که خسرو و جان فرنگیس رو اون نجات داد میگه تو دانسته ای درد و تیمار من تو باشاه پیکار من سزد گرمن از چنگ این اجده ها به وقت و به فررتوی آبام رهای نزگیو میگه به که در نگه کرد گیو بدان تا چه فرمانده از شاهنگیو فرنگیس را دید دید پرا زبان پروز نفرین افراسی ها میگریست به خاطر مهری که پیران به اونو روا داشته بود. بگیوین چین گفت که سر فراز کشیدی بسی رنج راه دراز. چنان دان که این پیر سر خردمند و رادست و روشن روان. پس از کرد داور رهنمون بدان که راهانید موراز خون. زباد مهر او پرده جان ماست از این کرده خیش زنها رخاستر آین ایران. اف بوده کسی زنار میخواسته ب فاصله بی رنگ با به زننهار بدم. و اگر یعنی کسی اصلا خودشو رو بنداازه بگیم من جنگ نمیکنم به زنها تو هستم زنار یعنی در پناه امان دادن. در پناه اصلی تو بودن خود واژه اینه ده. که بعدا به عربش رو دادن. اون کس اگر کسی این کار بکنه اون زننهار خار بود و دادگاه های ایران اون رو نمیکردن می گناه تو چندان بزرگی که دادگاه در خود نموینه که این گناه رو کیفر بده، کیفر تو با خداونده، این زنهاره، یا حالا زنهارم خواسته، دیگه تو نباید رو. به دو گفت کی وی سر بانوان انو شهربان باش تا جابدان، یکی سخت سوگند خوردن به ماه، به تاج و به تخت سرف رازشا، که گرده بر برو روز کین کنم ارقوانیز خونش زمین، دو گفت که خسرا شیر فش زبان را از دان یزدان مکش کنون دل به سوگند گستاخ شو. کن به خنجر رو گوش سوراخ کن چون از خنجرت خون چکت بر زمین هم از مهر یاد آیدت هم زکین. یعنی مهر پیمانی که بستی پیمانی که با خدا بستی مهر مهر پیمان هم این پیمان درست میشه که خونوی می بر زمین ریخت و همین که در حقیقت کین خود رو از او دیگه به خاطر ما او رو نکشتی بلد. چون این گفت پیران از آن پس به شا که چون پویم ای شه پیاده برا پیران گفت به فرمای کسبم به حد باز نیست چونان جان که بخشیده جان و چیز به تو گفتی وی دلی رسه با. چرا سوس گشتی با وردگاه به سوگند یا اگر باره باز دو دستت ببندن به بند دراز که نخشاید این بند من هیچ کس گل شاید گل شهر خواهم, خواهم تو بست یعنی زن فقط زن خود بند رو باز کنه کسی دیگه بین را با بند برو بدان گشت هم داستان پهلوان به سوگند بخرید اسب و روان سوال کردند آ دکتر جوینی در مورد افراسی اوسا در مورد افراسی بیشتر توضیح دهند. دختر بختیاری اینو پرسیده. درود به بختیار و بختیاران و دختران بختیاری. افراسی ها در اثر سودو فرانکرا سایان. فرانکرا سایان یعنی کسی که کوشتار زیاد میکنه و روانشت پرده بود این رو معنی کرده به افکننده ولی صحیحا یعنی اسلحه و فرنگ را یعنی کسی که قطع می‌کند دسته پا و زیاد و البته افراسی پور پشنگ بود پشنگ پور زادشم بود زادشم پور تور بود و تور پور فریدون بود یعنی اینا قموه شما بودن به همین دلی که ایرانیان به, اف... به اونا میگفتن توران از امام فارسی در ابسموده توئیرین توئیرین یعنی پسرمو یعنی ما به اونم گفتم توران یعنی پسرمو به ما خیلی خب خوب چه فایده کو از سود اونا به هم فرستادن می‌شد یه اون دیگه مرتبا سفتم می‌شد و افروسی نماد یک دوره بلندی که تورانیان به ایران سفتم می‌کردند تا اینکه بر اثر یک رویداد سخت و که طبیعی هم توران رو یخ قرار گرفت هم بخش شمالی ایران رو که بعدها به این خواهیم رسی به من خواهم گفت. فکر کنم این اندازه فعلا کافیه پرسیدن که یک شاهنامی با معنی با, معنی با معنی که همه فهم باشه معرفی فرمایید شاهنامی من نمی دوم آیا هم پیشاهنامی هست که بشید باشه؟ یه شاهنامه هست که نثر نوشته شده و همه اببیوت ابزار رو داره همین شانومه که من اون شانومه موله اه در سیاقیه بله بله بعد یه دختری خانومی که دستار شده او هم یه چند جلد این شانومه نوشته به نصر اون هم همه عبیات افسوس دارداره من ضمن این که برای هر دوشون یعنی ستایش قائل هستم که عمر خودشونو برای شانومه وقف کردن ولی خب ایشون اگه میخواد که عبیات افسوس درش نباشه و آسان فهم باشه باید همین ویرایش من رو بخونه به ویژه اینکه من اینا رو معنی هم در زیر نویسم معنی کردم هر جا که مشکل بوده و در اون پیش گفتاران که خیلی بحث بسیار بهترین راهش به نظر من شنیدن برنامه پنجره های رو به این برنامه رو من با شاهنامه شاهنامه در مقابلشون باشه و بتونن معنی میشه براشون توضیح میدین شما بر این هستش. یک پرمیمه که اینجا هستش که من این پرمیمه رو الان میارم. اه آها اینجاست. خود پرمیمه که میخونم. با درود خدمت های حدیعتی و بای دکتر جنیدی که لحن زیبای ایشان همواره مرا به یاد شاهنامه خانی پدر بزرگم میاندازد. خیلی دوستتان دارم و میخوام که اصبات بیشتری برقرار کنن حالا با شما و بنیاد نشابور از... آقای تحمسیلی از آبادان درود به روان پدر بزرگ گرامی شما آبدانان آب آبدانان آب آ... آ... یک بار دیگه هم بله ببخش. ببخش. درود به روان پدر بزرگ گرامی شما. شما درود به روان همه پدر بزرگان که از زمان باستان برای فرزندان و نوادگان شانانه میخوندن و امیدوارم که با شاهنامه رویش زندگی خود مورد درست بکنیم پرونده ایدانگشت هم داستان پهلوان به سوگن بخرید و روان به دو داد اصب دو دستش ببست از آن بس بفرمو تا برنشست یعنی سوار اصب شد من تصور میکنم که بازگشت پیران داستان رو همینجا بگذاریم چون به این تلفن های نام با پاسخ بدیم بقیه داستان هفته همه. نه خب اول تلفن رو میشنویم. نایده. می خواستم بدونم منظور از هفت خونه راستم چی؟ از شما خواهش می کنم توضیحاتی توجی... دهیتا برای منو جوانان قابل فهم باشه باشه باش دباتون بخیم آنهیتا حسانانی خستم از گرده بر اناهیتاب و درود به اون گرگان سرسق و مدمان سخت خوشش هفت خان در اندیشی در کیش مهری بوده یعنی هنگامی که ایرانیان کیش مهر داشتند، هفت خان برای گذر از سختی ها که این جهان ترتیب داده بودند که وقتی که کسی از این هفت خان به دیگه به مرحله پیری میرسه و شخص بارسته است اون وقت هفت رستم در حقیقت یه تصویری از همون هفت خانه یعنی کیش مهری که می‌بینیم مثلا گذرشتن از تکنگی گذرشتن از تاریکی گذرشتن از اجدوها یعنی سختی زندگی گذرشتن از چنگال شیر یعنی دستجن شجاعت و گذرشتن از گروسنگی گذرشتن از زن جادو اینها چیزهایی که برای اون چیزی که امروز میگن که برای پالایش روان لازمه یعنی انسان باید از این سختی های زندگی بکره تا ای برسه که دیگه انسان ای باشه بعد از این که هفتخان کیشی مهری تبدیل شد به کیش زرتوشت در کیش زرتوشت شش امشاسپند هست که اینا صفات او رامزده بهمن اردی بشت و شهری بر اونا بعدها موبدان زرتشتی این شش امشاسبند رو با خود او رو مزده کردن هفت نمیتونستن از واژه هفت خودشون جدا بکنن یعنی از عدد هفت خودشون رو جدا بکنن باز شما هفت امشاسبند بعد هم وقتی که اسلام اومد به ایران و عرفان در حقیقت اسلامی ارفان ایرانی مسلمانان ایران پرورش پیدا کرد خیلی از آرفان یکی درجاتی برای رسیدن به خداوند بیان کردن مثلا کنید که خواج عبدالله انصاری صد میدان رو قائل شده صد آیه قرآن رو نوشتیم که از اینا که بتونید اینا رو انجام بدید به خداوند میرسید و سوره وردی، شیخ اشراق میبینیم که چه لخوردهی عنوان کرده و محمد نصفی یکی از بزرگترین عارفان جهانی که متاسفانه مردم کم میشناسنش چون به شعر رو به اینجورسی نپرداخت در کتاب انسان کامل یک سخن خیلی خوب میگه میگه یه قدم بر نقص خودنه یک قدم بر کوی دوست هرچه بینی دوست بین با این آنت کار نیست یعنی یک گام برداری به سوی خداوند میرسی به شرطی که نفس خودتو اجده های نفس خودتو رو در حقیقت مخور کرده باشی اما می‌بینیم که با وجودی که این پیشنهادها شد در میان عارفان و اسلام ملت ایران چسبیده به هفت شهر عشق اثر رو در حالی که خود عطار در پیری خودشی نفی این هفت شهر عشق رو کرده و من در کتابی که درباره عطار دادم اینا رو همرو شهر خواهم داد اما همیشه و هم شهر عشق هفت اینکه این زمان درازی که بر تقدس عدد هفت گذشته هنوز داره کار خودشو میکنه و هفت شهر اشغتار بیشتر مورد پذیرش مردمان ایران هست. درود فراوان در مورد کتاب زندگی و معجرت آریایی ها سوال کردن که حتی گشتن نتونستم پیدا بکنم چطور میتونم تیگه کنم؟ همچنین نوشته های دیگر شما رو برای دو جوون دی یک هشدارنده پیشین هم از شما خواسته بود که ترتیب پیوند اون‌ها رو با بنیاد نیشابور بدید اگر تلفن بزنم به بنیاد نیشابور اون وقت اونجا براشون کتابار هم میفرستن تلفنی میشنویم در خدمتتون هستیم <تصفيق> م ببینم که یمین در مرد ادله که خوب این داستانای شاهنامه وجود داشتند و پیشینا تاریخی دارند های باستانی بر ما صحبت بکنند چون ما در به عنوان طرفدارای این طرفدارای این مسئله تو جم میخایم صحبت کنیم دلیل که حالا همه اکثریت مردم فکر میکنم شاهنامه فقط های حماسی و زاده تخیل فردوسی بوده اما ببینیم اگر واقعا همچین شد وجود های داره بر ما دمادش صحبت بخوادن بیشتر که خودمون خودم اطلاعاتمون بیشتر بشه همیچی چیزی هم اگر میخواییم دابت کنیم بسی اینا ارائه کنیم در نظریه همون دفاع بکنیم ما شکرم هم میخواییست همون زنده هم. شد نوزده. برای که خودش جمع دلیل بعد چون گهه میگی عدله ها این یک اشتباستی که ولی خودت و پشتکارت نورد بیسته باید برای اینکه بدونید که شانوم تاریخ و دلایل تاریخ بودنش چقدر هم قویه همین کتاب زندگی و ماجعت آریاییان منو بخونید اونجا پی میبرید که مهمترین روشنترین گسترده ترین تاریخ جهان شانوم است. ام سوال کردن که ترک و و اسکینوها ریشه آریایی دارند یا به یا به قول دشمنان ایران هندو اروپایی در, در بین کسانی که رفتن به آمریکا و اونجا ساکن شدن ما هم آریاییان می‌بینیم هم یک مقدار قبایل زرد هم اونجا هستن به خصوص یک تیره هایی هستن که از مغولستان رفتن چون مغول‌ها اثر سرشون رو گر... می‌زدن اونا با بسطی استمو باقی می‌گذاشتن این کاری که مغولان می‌کردن رو هم, هم میکنن ام ام ولی خب تیره های آریایی شناخته شده است و فرهنگ اونها هم با فرهنگ ما تو فرهنگ باستان ما منطبقه ها و در حقیقت های دیهنیشون خیلی برابری میکنه با فرهنگ ایران و باستان من با امید یزدان در کتاب داستان ایران اینها رو آوردم که امسال امیدوارم به دست ایرانیان برسه یک ای سوال کردن در مورد در مورد دیو صحبت کردی شما مفصل هم می‌دونیم صحبت کردید حالا ایشون با در برنامه‌های آینده‌ام صحبت نمی‌نم اما در مورد ققنوس پرسودن موجوداتی مثل ققنوس رو دید وجود داشتن این آقای میثم شیداد کرج پرسیدند درود بر شما ققنوس در شاهنامه نیامده ما بحثمون در شاهنامه است بله در نوشته‌های دیگران نویسنده کیری ایرانی اومده بله ام و اما دیو در شاهنامه تجلی یه چیز هایست. مثلا دیپ یعنی نوشتن این دیپ تبدیل میشه به دیو وقت میبینیم که دیو نوشته رو به تهمورسیات میده یعنی دیف در حقیقت یا دیو که دوین های تبرستان بوده که در این بار بحث بسیار مفصل کردیم کوه های تبرستانه که ایرانیان از اونجا خواستن بگذارن و با سختی های فراوان اونجا گذاشتن تا رسیدن به دیو سفید دوین سفید یعنی کوه کوهی که سفیده بزرگترین کوه های هم هست این چی میتونه باشه تمام ونده مبارزی که دم تی با ایرانیان کرده میبینیم یه بشانه مجدده شب اومدی که ارض ابر شد تا به ما جهان گشت چون روی زنگی سیاه سرگردون با سنگ بارید و خشت تراخنده گشتند ایران به یعنی یه فعالیتیه که دوین سفید که بزرگترین دیوان بوده کرده نه جنگ بود نه چیزی بعد ها میبینیم که راه کشیدند و این راه آسون شد یکی هم دیو تورانیان که به ما میگفتن که دیو چون خارج از کشورشون بودیم اونجایی که افراسی ها میگه در داستان پسین میاد هفته دیگه میگیم که زین دیم، که از که این دیوزاد از ایران و از این دیوزاد نجاد، یه نجادی پدید میاد یعنی که خسرو رو داره میگه که پسر سیاوخشه در حقیقت این دی اگر دیوزاد باشه سیاوخش دیو میشه یعنی غیر،, غیر کشور توران میشه اینکه این که ببینیم دیویک از دانش آتش‌گورد و فلان رو نه نداشت. سوال زیاد کردم بازم خاصن انت در مورد کتاب‌های شما در مورد شاهنامه ای که شما آماده کردید و منتشر کردید با تلفن بنیاد نیشابوری خدمتتون می‌یدم 88 96 27 84 یه بار دیگه هم عرض می‌کنم 88 96 27 84 شما میتونید آثار استاد رو در اونجا بیایید. سلام الان معذرت با عرض درود و مانز به مجریان این برنامه و جناب آقای دکتر جنیدی من ملکی هستم از تهران سوالی داشتم خواستم از آقای دکتور بپرسیم که آیا این صحبتی که قسمتی که در واقع بعد از مرگ سهراب میان و کیکآووس براش نوشدارو میفرسته برای رستم آیا این جزء ها یا اینکه واقعا همینجور هست و او برای رستم نوشدارو فرستاده با عرض سپاس و تشکر الله که همه خوب و سلامت باشید کچه کار از سلامت خدا ممنون خدا روحشم. درود بر شما در این داستان چنین اومده که رستم از گودرز میخواد که از کاووس نوشدارویی که در گنج توست که کجا خستگان را کند تن درست سزاد گرفرستی به نزدیک من روشن کنی جان تاریک من این بوده منطقه گودرز به رستم میگه تو خودت برو بره چنین گفت گودرز خیلی پهلوان درخت شاه جهان درختی سه هنزل همیشه باید خی... آدم است تو خودت برو رستم حرکت میکنه ولی زود از پسش میان و میگن که سهراب شد این جهان فراخ همین از تو تابوت خواهد نکاخ یعنی در حقیقت به اونجا نرسید ولی رستم حرکت کرد در مورد اون بخشی که ما در مورد خانواده و بزرگترها صحبت کردیم پدرها و مادرها و احترام به اونها صحبت مادر برادر مادران. پدران مادران و در مورد برادر بزرگترم گفتن در وقتیاری به گووب، گگه و گوگو و کاکا می من ببخشید اینا, اینا رو چون زبون محلی هم هسته شما خوبه درسته همونه گگه هم. باشه همونه گگه کاکا شیرازی اینا همه آه. نشون میده که برادر بزرگ تو آدربای جان هم میگن قاقا خب همونه تو اون شده اونه بله بانان یزنان پاک با درود در هدایتی عزیز و استاد فرزانه فریدون جونی. اصلا خدمتون که من میخواستم اصداد زحمت بکشم در مورد دو کلمه فردوس و پردید یه توضیحاتی زحمت بکشم بگم. قصد فردوس به پاداش عمل می ما که رندی مو دیر موان ما را بست. چشممان دم که ز شوق تو نهد سر به لحد تا دم صبح قیامت نگران خواهد. شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید. خاشوکی درود بر شما واجه در عوضه بود پایری پا دعیز دعیزه یعنی دژی که پیرامون اون بسته شده این باجه در رفت زبان ها اروپایی پارادایس و پردیس شد در زبان فارسی و عربی حتی فردوس شد و در قرآن هم به نام فردوسه زشید. یاد شده پایری پا دعیزه سپاسکزار هم از شما آی دکتر جنیدی. شاد باشید پیروز باشید شما هم همینطور مانده نباشید فرمانده نباشید تشکر از شما که برنامه مونسنیتی شنوندگان عزیز همکاران من آقای هاشیدری تایید کننده برنامه آقای Heidari صدا بردار آقای ستایشمنش عزیز هماهنگی برنامه آقای حسینی ارتباطات و آقای ابراهیمی هماهنگی پخش من هم حمید رضا هدایتی سردبیر و مجری برنامه پنجره خیریه به شب خوش ایرانیان عزیز منده نباشید. هر چه دهنده منده نباشید. شاد باشید، دیر زیوید.